جلسه سی هشتوم از بحث قوائد فقه الهکومه و, و سیاسه از فرو قوائد فرعی اهم و مهم جلسه سی هشتوم پونزه دوازه هزار چار ست محسس عموزش آلیه امام رضا علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم الحمد علیه رب العالمین و صل الله علیه و سیدنا نبی نو عبقاص محمد و علیه اهلویت طاهرین المعصومین سیه مبقیت الله فی الارضین روحی و عرباخو الله الفدا با استعانت از خدای متعال و توسل به پیامبر گرامی و اهل بیت اطهار علیهم السلام آغاز میکنیم در بحث از تس قواعد مرتبط با تس قاعده ترجیح اهل اصلح ما عرض کردیم بعضی قواعد مرتبط داریم. اونجا قاعده الجمعون بین المثلات اولامند ابتال احد ما یا الجمع بین ما اولامند ترک, ما، ترک احد ما و هر تعبیر دیگه در بحث تصاویم ارز کردیم، قاعده تخییر داریم، البته در اینجا باید عرض کنیم که برخی در بحث موضوعی که جای ما نشناسم در موارد جهل در موارد جهل به میزان مصلحت حکم به توقف کردن خب مثلا در میان اهل سنت مثلا ازالدین ابن عبدالسلام که یکی از آدمای خیلی مطرحه و بلکه بگیم از به یه معنی مهم است که کتابش در ذکر مصادیق خیلی پربار آمده مصادیق همه مهم رو گفته ایشان چه کار کرده اینجا حکم به توقف کرده اگر جهل ما به میزان مسلحت داشته باشیم خب این در هر حال اینا قواعد در واقع فرعی بود خب بعضی قواعد دیگه هم داریم یا گاه قا سیاق تعبیری دیگه ما داریم خب شما اگر خاطر شرفتون باشه اونجا که بحث از بیان سو سوه داشتیم یه چند تا هفت تا رو میابردیم تو اونها هر کدوم میتوانه به عنوان قاعده باشه لذا بعضی از تعابیر دیگه که ما اینجا به کار میره حالا بعضیش تعبیره و سیغه است، بعضیش هم نه می توانه حکایت از یه قاعده مستقل بکنه خب در تضاهم بین دو مصلحت یه تعبیر اینه ازاته ها رزت المسالح از بالعظفی مقابل الاقوام خب یه قاعده اگر مثلا قاعده حساب کنیم قاعده ای این البته شاید به سیغه تعبیری چیز مربوط حسابش کنیم بهتره ولی یه ملاحظه داره میفکی که اگر یه تعبیر اینه که میگه ببین کدام اقواست کدام از افه خب این میشه تقدیم اقول مسلحتین چون بحث ما در چیه؟ در تضامن مساله این الان تقدیم اول مسلحتین یه مفهوم آمه اونجا گفتیم اه. یا تعبیر دیگه بگیم تقدیم احمل مسلحتین اونجا ما گفتیم تو تابیر که اول گفتیم گفتیم مسلحت فعل اصلح تقدیم الاصله اصلح الافعار اون یه تعبیر منطقه این تعبیر شاید بگیم تره. تقدیم الاصله احمل مسلحتین منطقه الان متعلق شدیم اهم. یه جای تعبیر اقوا به کار میبرند خب یه جایی حالا اونجایی که با لسان واجب و حرام بود ما گفتیم تقدیم الاجب خب لاهدیت تقدیم احمل مسلحتین لاهدیت تقدیم احمل اه اه مسلحتین خب این هم هست تعبیر دیگه نگاه کنید در این زید گفته میشه ازا تعا رزت المساله نزحیب بل ازعف خب اینجا نزحیب بل ازعفی مقابل الاقوام مفهوم قوی و ضعیف به کار برده شده شبیه احمل مثلتی میگه به کدام مثلتش اقواز کدام ضعیف ضعیفتره پس اینا تعبیر چی هستن؟ سیاق تعبیری هستن نوزهی هم یعنی چی؟ تزهیه یعنی فدا کردن ما از افر رو در مقابل اقوام تزهیه می قربانی میکنیم. تعبیر دیگه اش چیه؟ لابدیه تو تقدیم اقوال مسلحتن یا گفته میشه شه ایه ما اهم یا اقوام پس این هم این ها تعبیری دیگه هستن خب دوست معیار داریم نگاه کنیه الان اینجا با تعابیر بعضیش کیفیه بعضیش کمیه الان یک تعبیر دیگه هم داریم که یه مقداری دوست مفهوم دیگه که اینها هر کدام یه حیثی دارن ممکنه ما اینها رو چه کار کنیم؟ قواعد مستقل حساب بکنیم مثل قواعده اصغر المسلحتین تقدیم الاکبر المسلحتین یا اعظم و نفعن قاعده تقدیم مسلحت کبرا مسلحت اکبر المسلحتین خب اینو چرا مستقل ممکنه ما مطرح کنیم چون یه جای درسته با اونها همخانی دارند. اما اگر قاطر شرفتون باشه تو اون بحث مساله و فاسدی که سوس و وهمی وورد اصلا خود اکبر المسلحتین زمن بحث بود که شما ارز کنیم ببینید یک موردی ممکنه شما بگید اکبرون مسلحتن اینو تقلیل بدیم به این همون اهم ما الان اون توابیر سیاق تعبیری که داشتیم بعضیش از این سیاق تعبیری ای چی بودن؟ یه مقداری نزدیکن خب این توابیر نزدیک گاهی باعث میشه ما تردید کنیم آیا اینها قاعده مستقلن؟ اگر بگیم اهمل مسلحتن خب میشه مثلاق همون قاعده اهم و مهم اقوال مسلحتن بگیم خب این کم نزدیکه بعضی همالتای با هم به کار میبرن مثلا یه اهم و اقوام پس ما یه مشکل چیزی داریم در واقع یه مشکل بیانی داریم مشکل بیانی در سیاق تعبیری این که برخی چیکار کردن برخی بزرگواران از فوق اصولی به جاله تو فضا اهل سنت که اینا رو به کار می‌برن شبی هم که به کار گرفته میشه برخی از اونها در واقع سیاق تعبیری متنوع و به درستی سیاق ت... حساب کردن در واقع هم معنا گرفتن و واقعا اونها رو به عنوان سیاق تعبیری هم محتوا هم معنا اونها رو صرفا به عنوان سیاق تعبیری خلاصه به کار بردن اما برخی دیگه چه کار کردن برخی دیگه اومدن در بعضی از موارد در اما اینجوری بگیم در برخی از مسادی تنوع بیانی صرفا لحاظ نشده بلکه براد گویندگان این است که قواعد فرعی هم رو با این تعابیر مورد اشاره قرار میدن برخی گویندگان و برخی نویسنده فقههای عمدتا اهل سنت خب اینها رو تعبیر مختلف گرفتن لذا تو اون تعبیر اکبر المصلحه اگر خاطر شریف شما باشه اونجا یه قاعده مستقل بود اگر میخواستیم بگیم اهم و مهم همه اون هفتگانه همشون مسادیق اهم مهم بودند ولی اکبر المصلحه تاین جنبه کمی داره در واقع تعبیر اکبر اکبر تعبیری تعبیریست که در واقع به شدت متکی بر در واقع ب... بگیم بیانگر اه، اه، یک نوع زابطه کمی میکنه بعضی موارد ممکنه اهم از کمی باشه مثل خوده اه، مفهوم اهم که فراتر از در واقع ترجیح کم صرفا کمی است ترجیح صرفان کمی ممکنه بعضی از موارد برخی از خلاصه مصادیر اهم اهم بودن می توانه کیفی باشه برخی از اونها هم می تواند چیکار کنه ما می در واقع متکیب بر شاخصه ای صرفاً کیفی باشه چونان که اه اهمیت اهم بودن حالا ما اهمیت تو فارسی به معنی مستر بودن نمیگیریم حاصل مستری میگیریم لذا من تعبیر اهم بودن بگم به معنی مستری میخوام ارز کنم اهم بودن میتوانه اه با ترکیبی از شاخصهای های کمی و کیفی هم مد نظر قرار بگیره در واقع اه ما اه اینجا با این مسئله مواجهیم در واقع شاخصه هایی که میتوانند اهم بودند رو بیان بکنند میتواند در واقع در سه شکل باشه لذا اینجا ما دوچار مشکل میشیم که این اکبر یا بعضی موارد دیگه چیه جوریه اه خب در سه صورت ما اهم بودن رو میتوانیم در سه گونه خلاصه سراغ بگیریم اما اینجا اینا و کدامش اه اه سازگاری داره خب در برخی موارد کمیه در در برخی موارد این مفهوم می صرفاً کیفی باشه، بخشی از اینا هم ترکیبی باشه. خب حالا مفهوم تعبیر اکبرالمصلحتین عمدتاً جنبه کمی کم داره. در مقایسه تعبیر اکبرالمصلحتین با مفهوم عام اهم بودن این خلاصه تفاوت رو داره خلاصه با دیگر مفاهیم اگر بخوایم مقایسه کنیم ای این تفاوت رو داره لذا ما باید ببینیم حالا اگر به ویژه تحبیر دینی باشه ولی ما برحال در بحثای دیگه خلاصه باید این مورد رو بررسی بکنیم خب آیا ز... زابطی مستقل یا یعنی. نه پس ما الان داریم چه کار میکنیم بریم از اول جلسه لیست میکنیم قواعد فرعی رو و قواعد که سیاق تعبیری که صرفاً سیاق تعبیری هستن و م... اونهایی که میتوانن فرعی باشن خب این قاعده ی... بعضی اینجوری گفتن در واقع تقدیم اکبر المسلح بعد لذا گفتن مثلا 11 به مصلحت صغیر من اجل المصلحت کبیره خب در وقتی که ما صحبت از وقتی با صحبت از در واقع مفهوم اکبر مفهوم اصغر و صغیر هم خلاصه به طور کلی مطرح میشه یه موقع مثلا ما مفهومه حالا اینجا خود این هم هست میگی مثلت کبیر، مثلت سقیر اونا دیگه زم نشه در واقع در این قاعده ما مفاهیم مختلفی داریم مفهومه، مثلت کوچک یا سقیر مقابل مفهومه، مثلت کبیره طبیعیه که ما مسلحت اگر واقعا ضرورت داشته باشه مسلحت کبیر مقابل مسلحت سقیر خواهد بود و در صورت ضرورت در ضرورت تقدیم یکی بر دیگری طبیعتا مسلحت کبیر بر دیگری باید خلاصه بر سغیر باید مقدم بشه خب اینجا اما نکته که بود تحلیل شاخصه بود تحلیل شاخصه اکبر بود یا کبیر شاخصه خلاصه اینجا چی داریم؟ مسلحت کبیر یا اکبر مسلحت کبیر و سقیر در اونجا که با هم کجایی مقایسته دارن یه جایی هم ممکنه هر دو مسلحت حالا اینا نسبی هم هست دیگه بگیم مسلحت اکبر در واقع اینها چی هستن؟ یه نوع خلاصه نسبیتی هم در اینها هست در این مفاهیم نسبیت وجود داره بنابراین اما نیاز به فهم این شاخصه ما داریم پلسه شاخص که داریم میخواییم ببینیم مرادش چیه اون اهم سگانه بود کمی یا کیفی یا هردوانه خب اما اینجا چی؟ ما اینجا لزوماً مفهوم کمین ببشید کیفی نداریم بنابراین این مفهوم تفاوتی داره اگر بعضزیاد در نتیجه اگر کسانی این مفهوم رو به کار میبرند جای خلاصه تردید هست می توان با تکیه بر تفاوت مفهومی خلاصه کبیر رو اکبر با دیگر مفاهیم گفت که با مفهوم مثلا مثل هم، با مفهوم اهم گفتش که این مفهوم تفاوت جدی داره خلاصه تفاوت خاصی داره یه مقداری محدودیت داره و محدودیت و زیق معنایی داره و باید اون رو لحاظ کرد خب این یک مفهوم. مفهوم خب پس ولی این که حالا وجه تقدیمش هم دیگه روشنه ما به هر حال اگر واقعا ضرورت داشته باشه وجه تقدیمش به خاطر کبیر بودن خود اون اقتضا میکنه که ما این رو ترجیح بدیم در واقع وجه ترجیح این یه نوع جنبه چیز داره در واقع نوع اوغلایی داره ماهیت در واقع مفهوم کبیر و صغیر نشان دهنده چیه وجه ترجیحه به هر حال میان اون دو تاست همون همون طور که در واقع اگر بین کبیر و اکبرم بررسی بکنی میتوانه این باشه اما این دو در حد اقتضا در واقع ترجیح بگیم اکبر بر کبیر در مسائل شرعی نیازمند اثبات است مثلا در اینجا ما فرض میگیریم در اینجا فرض میگیریم که بعد از اثبات بکنیم به صورت بدوی خلاصه فرض میگیریم که باید کبیر بر صغیر یعنی مصلحت کبیر بر صغیر و نیز مصلحت اکبر بر مصلحت کبیر مقدم بشه اما از جهت شرعی واقعا اینجا در مصادیق متفاوته اما در هر حال بعد این مسئله شرعیه باید از منظر شرعی مسادیق اون اثبات شد به تعبیر دیگه صرف تفاوت ماهوی بین مساله و در واقع طبق بندی اونها در واقع مستل مستلزم وجوب ترجیح نیست مگر اون که خلاصه اثبات بشه مسادیق اونها به صورت مستقل یا قاعدوار خلاصه اثبات بشه این ترجیح نیاز به اثبات هست اینو چرا عرض میکنم؟ شما به این که آخ بیاید اثبات کنید دیگه خب اینقدر این قباید زیاد هست یه مقداری از این جهت که تذکر این نکتم از این جهت بود که غلبه چونین تعابیر و قاعد سازی ها در فضای اهل سنت اینقدر رایجه که در واقع یه مشکل ایجاد میکنه و اونیه که اگه کسی دقت نکنه اصل مسلم میشه براش نباید به مسابقه در واقع اثبات شرعی هم... چون این قواعدی تلقی بشه قواعد فرعی تلقی شود چرا؟ چون که در واقع در نگاه شیعی نمیتوان با تکیه بر ویژگی های ویژگی های استحسانی خلاصه به اثبات همه خلاصه قواعد پرداخت حالا نگیم همه قواعد به اثبات قواعد فقهی پرداخت اما در واقع این نگاه بر در فضای اهل سنت وجود داره موفق قصیم رو تذکر بدیم یعنی معنی مقداری الان دارم اینجا تقریر بحثم میکنم هرچند اختزا وجود داره در واقع بگیم اقتضائ تفاوت میان خلاصه مسائل مختلف اختزای ترجیح میان اونها رو خلاصه در بر داره اما اثبات ضرورت اونها ضرورت این ترجیح نیازمند تکیه بر استدلال های خلاصه فقهیست هر کدام باید خلاصه اثبات ای رو به دنبال خود داشته باشه پشت سر خودشون اثبات بشه خب خدمش شما مرز کنم پس میبینید به نظر میرسه یا یه قاعده فرعین رو توانیم بگیریم اما نیاز به کارهای تکمیلی داره اینجا نمیخواستم برای چون که در مقام توصیفیم یه تذکر اینجوری خلاصه نیاز هست که باید اینها رو خلاصه اثبات کرد صرف تفاوت کفایت نمیکنه. خب این بحث در چی بود؟ ترجیح اکبر المسلحتن ما در اونجا دیدیم آقای سوسوه عملاً حالا اونجا روی خیلی مانوف ندادیم که آقای نه هر کدوم قاعده جدا هم. ولی کسانی مثل آقای سوسوه این رو کن نه جدا گرفتن بعضی کسای دیگر هم توانیم بگیم که به این صورت در واقع این رو تلقی کردن پس تلقی این نیست که خلاصه ما بگیم صرفا تعبیر دیگه است تلقی ها میتوان دوگانه باشه برخی این رو صرفا اون تذکر کلی رو تو موارد مختلفی باید به نظر بگیریم تطویق کنیم برخی این قاعده رو قاعده فرعی رو صرفا به مسابه در واقع سیغه تعبیری برای تقدیم احمل مسلحتین به کار بردن اما برخی در واقع به عنوان شاخص مستقل به بردن به عنوی قاعده مستقل به کار گرفتند. خب ببینید کدام ترجیح داره به نظر میرسه که ببینید اگر شما بگید آقا اهم بر مهم دوباره شما یکی از شما میپرسه که خب اهم کدامه خب این به همچنان باقی میمانه به نظر میرسه که این قاعده به مسابقه در واقع یک قاعده فرعی باشه فرعی هم نبونه تطبیقی قاعده فرعی برای تعین شاخص و نصاب در شناخت اهم خلاصه باید لحاظش بکنیم این قاعده توان مستقل باشه ولی به با عنوان قاعده فرعی قاعده فرعی اگر مثلا شهنش رو این بدانیم که تعین شاخص رو نشصاب بکنه در شناخت مسادیق قاعده کلیه بگیم کلانه حالا اینجا بگیم کلان اهم و مهم در واقع به تعبیر دیگه ببینید اکبر بودن اکبر بودن یا کبیر بودن شاخصه, شاخصه کمیست که قابل اندازهگیری است اما اهم بودن مفهوم و شاخص خیلی آم می است و کلی که نیازند در واقع شاخص گذاری برای خودشه. اگر ما شاخص گذاری نکنیم بدون شاخص گذاری برای اهم اهم و مهم نمیتوان به کلیگویی اکتفا کرد درسته یه مقدار شکل قیافه قاعده داره در واقع در مقام امتصال در مقام امتصال و شناخت اهم و مهم نیاز به خلاصه شاخص داریم در مقام امتصال و شاخص گذاری نمیشه نکنیم و همینطوری رهاش بکنیم اما اینجا اگر ما این کمیت رو بگیم مثلا میگیم آقا اکبرول مثلعتن. حالا ممکنه در خلاصه در تطویق اونم دوچار مشکل بشیم نمیتوانیم در واقع اون قاعده کلی رو تطبیق کنیم یعنی اینقدر کلی است که خب چیکارش کنیم باز مجبوریم اینا رو بشناسیم. در نتیجه این به نظر میرسه کشش داره که ما این رو به عنوان قاعده فرعی تلقی کنیم و قاعده مستقل خب لذا اگه اینطور باشه ما قاعده مستقل حساب میکنیم اما زیر اون پس برخی یه قاعده صرف تعبیر گرفتن برخی دیگه چیکار کردن این رو قاعده مستقل اما فرعی اما قاعده فرعی برای اهم متقدیم اهمل مسلحتین تلقی کردن خب قاعده اهمل مسلحت خیلی کلیه خب جوری بفهمیم کدام اهمه یه راهشنه که بگیم آقا اکبره لذا اون آقای سونسوه هم همین هم کار کرده بود بعضی دیگران هم همین کار رو چوبسا کردن مون تو تعبیر لغزنده است برخی خیلی مقدار ابهام داره معادل اون گرفتن این هم پس یک تعبیر یک قاعده دیگه ما می توانیم شناسایی بکنیم قاعده اعظم و مف... نفعن علل اقل نفعن این هر دو الان از سنخ نفعن در واقع اینجا این قاعده یه مقدار بحث رو از جهت مفهومی دایرش رو تغییر داره این قاعده به جای مفهوم مصلحت مفهوم نفع رو در واقع منفعت رو در واقع محور بحث قرار داده خب اما آیا مفهوم مصلحت با مفهوم منفعت یکی هم خیر اینا تفاوت دارند خب بعد پس نسبت شناسی بشه تفاوت دو مفهوم مصلحت و منفعت در فرق شیعه پر رنگ شده معتزی تف تمییز بین سیاق تعبیری است بله آقا در خدمت دیگه دیگه هم مونده. بله، بله. بله، مثلا ببخشید. که ما دچار خورده از شدیم و اونم اینه که ما بگه بحث تزاحم فائل شناسای فعل خارجی یا فاعل فاعل, فاعل خب فال تداهم بلکه نه اون دو عین خارجی نه بعد اول اون رو بشناسیم تا فائل تظهم دستش باز باشه یعنی اول ضابته بدیم دستش در بین, بین نق و مسد اصلا و یه حرفها چیه تها میشه می دا اینجا بین این شه اینشه یه این ای تضها می شکل گرفته کدوم راج کدوم مچه به سمت راکه؟ نه خب نه میخوایم ببینیم. اولا ببینید در ادبیات فقری مخصوان تو عدویت فقری علی سنت اینا تفکیک شده بعد اینا رو بشناسیم بعد ببینیم انزباد منضبطش بکنیم لا بلای فرمانشای علما من خیلی استقرار که از چند سال اشتغار پس, اشتغار اشتغار. پس جلسه بعدم این رو در نظر داشته باشید یا حالا ممکنی یه جای مناسب تر که تصویر که حاصل شد اون وقتی جنبندی بکنیم الله تشکر از نکت سرجی عزت من